صحابه پیغمبرن باشن موجهینن باشن سابقه جهاد در راه اسلام دارن داشته باشن با حکومت حق معارضه کردن مقابله کردن باید در مقابلشون با اقتدار استاد بود. خدا قسم صالح ترین مرد در میان ما علی است صدر بطه به بیعت با علی دل خوش داشتیم دیدید و شنیدید که قبول نکر اصلاح کنید یکی از شاخصه های حکومت امیر المومنین برخواست بودن از اراده مردم و خواست مردم است تغلب یعنی از راه غلبه و زور بر مردم حاکم شدن توی منطق امیر نیست با این را خود رو برحق میدانست اما کنار نشست تا وقتی مردم آمدن اصرار کردن ابرام کردن شاید گریه کردن التماس کردن که آقا شما بیا زمام امور ما رو در دست بگیر. همه این چیزایی که پیدا شده است از آراء همین مردم است. خب شما مردم راه میگید ما قبول داریم مردم رو قبول داره خب بسیار خوب این مردم تعیین کردن تو قبول دارید اگه میگید میزان رأی مردم است این رای مردم حالا ائتلاف کردید که به ضد رای مردم عمل کنید ائتلاف کردید دولت رو کنار بذارید این ائتلافات برای چیه؟ این چه ائتلافی است؟ هیچ قدرت و غلبه ای در مکتب امام که از تقلب و از اعمال زور حاصل شده باشه مورد قبول نیست در نظام اسلامی قهر و غلبه معنا ندارد قدرت معنا دارد اقتدار معنا دارد اما اقتدار برخواسته از اختیار مردم انتخاب مردم اگر شور و شوق شما جماعت ببیند قبول بیکند شنیدید جماعت؟ باید با شور و شوق بخواهید علیه و سیدید! علیه و سیدی! سیدید! سیدی! سیدی! اون وقت آمد زمان امور مردم در دست گرفت خودشم گفت: که اگر مردم نیامده بودن اگر مردم اصرار نمی‌کردند من علاقم به این کار نداشتم قدرت طلبی برای اون کسانی جایزه بدارد که می‌خواهند های نفسانی و هوای نفسانی خودشون رو ارضا کنند نه درای امیرالمومنین او دنبال تکلیف شریعت دنبال اقامه حق است قدرت رو از مردم گرفت مردم قدرت رو به او سوردن او هم قدرت رو گرفت بعد با اقتدار اون قدرت رو نگه داشت قدرت اونجایی قدرت که داشت. کسانی با قدرت اسلامی او با حکومت اسلامی او معارضه کردند با اینا هیچ مجامله و ملاحظه ای نکرد بدعت‌های غیروانی سابقه باشن، موجهینن باشن، سابقه جهاد در راه اسلام دارن داشته باشن، با حکومت حق معارضه کردند، مقابله کردند، باید در مقابلشون با اقتدار ایستاد و ایستاد اون اقتداری که ناشی از زور و غلبه و سلاح باشد در اسلام و در شریعت اسلامی و در مکتب امام او معنا نداره اون قدرتی که از انتخاب مردم به وجود آمد این محترم است در مقابل او کسی نبایستی سینه سفر بکنه در مقابل او کسی نباید قهر و غلبه ای به کار ببره که اگر یکی این کاری کرد اسم کار بکنه کاری که ناجی از زور و کلامم سلام باشه تکتب امام کو معنا نداره که اگر چنین کاری کرد اسم کار او فتنه است